خب از اونجا که شب یلدا بدون فال حافظ نمیشه اینه که امشب میخوایم فال حافظ حافظم بگیریم در از بله. حاجو قایندل مؤمنین و فرزند برومندشون نصف المؤمنین بله بله, بله خب ما میگیم یا همون نصفیه خودمون بله هم اینجا هستن و خب گفتم برای حاجو قایندل مؤمنین بزرگ جمع ما محسوب میشن بله از ایشون خواهش میکنیم بعد از اینکه من فال رو گرفتم و شعر رو خوندم ایشون زحمت بکشن برای ما تعبیر و تفسیر شعر رو بفرماین. بالا، تفضل. سلامون علیکم. بله سلام عليكم. خیلی ممنون. با پر میدنده به صورت همزمان. ترجمه مو کنم برای شانونم از شما ددی ترجمه بلد. نه بابا دیگه. دیگه. یعنی دلوقت. بگی منظور شاعر چی بود از این صحبت هایی که داره میکنه آره حق با نصفیه دیگه. آقا اجازه بدین بنده فال رو بگیرم شعر رو تا آخر بخونم بعدم با هم دیگه بریم جلو بیت به بیت آره مرور خیل. کنیم و ببینیم که آره. چی بوده خب این اه... کتاب حافظ الان اه... جلوی منه میخوام نیت کنیم و فالی از حضرت حافظ بگیریم اگه اجازه بدین بنده فال رو بگیرم آقا بگی دیگه فقط فقط فال رو بگیر که مهم شب کار داره ما یک دو تا منبر دیگه هم باید بره رو و چشم چشماجی خب فقط سکوت کنین بذاری من نیت کنم شما هم نیت بکنین که به اتفاق این, این فال, فال این این رو بگیریم دیگه من که فحش جون چشمم و بستم دارم نیت میکنم خیلی هم خوبه ای دل تو دلم نیست الله جنات بالا بیا دیگه بگیر دیگه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 احبه بله. یعنی اوه اوه شانس آجاقا چه فالی هم اومده ای خوبه تو میخونم براتون <تصفيق> سامی جان اون افکت خوشکلر موجود. رو بده و اون موسیقی قشنگر بیار زیر صدا که تحصیل این حالا بله. ببریم بالا دیگه تو این شبیه هم بهرندان رندان مکنه زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیم کم و گربد تو بر خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت همه کس طالب یارند چه حشیار و چه مست؟ همه جا خانه ی عشق است چه مسجد چه کنشت سر تسلیم من و خشت در میکده ها مدعی گر نکند فهم سخنگو سر و خشت ناامیدم مکن از سابقی لطف ازل ناامیدم مکن از سابقی لطف ازل تو پس پرده چه دامی که خوب است و کزه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 یک سر از گوگ خرابات برندت به بهش احبا عجب فالی اومد باشید بکنم داشت میگفت این جوون ها گیر نده دردی البته ببخشیده ما کوچیک درازunam که بخوام فالو تفسیر کنم ولی نه خب, دی... خب نسیمی جان اجازه بده حاجاقا در این مورد صحبت میکنه حاجاقا ما سراپا گوشیم آه. که شما تفسیر بفرمایید دیگه در بیت اول گفته که ایب رندان نکنی زاهد پاکیزه سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبرد بگوی دادی پاکیزه سرشت من بگو برامون معنی کن تفسیر خب اخه فخون بگیر بگذار ببینم من, من چه کار میکنم ددی ده... ایشان دارن میگه که ای زاهد پاکیزه سرشت انقدر با رندان نشست و برخواست نکنین رندان سابقه خوبه ندارن اموالتا را بالا دا میکشن هر واقعا همچی چیزی دم. میگه من فکر نکنم دادی دا اصلاف نداره دا فرشی دا بیخیال کن به در پاش نپیچ برو بیت بعدی من میگه باش باش اجازه بدیم بریم سراغ بیت بعدی در بیت دوم می من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش هر کسی آن درود آقابت کار که همشت. بله میفرماید که ما یعنی شخص ما که هر که هستیم هرچی که هستیم به تو هیچ ربط نداره بعد در مشره دوم هم درباره باره کشاورزی آه. و بهبوده کشتو دوشتو بانگشتو نه یک سری توصیه های داره که همین دو تا ببینید ددی ولی فکر کنم بله. منظورش این بود که نباید به جونو سخت گرفت بله. و... ساکت شده که فرزند نوغه سول آغلامو کنار ببینم که توی دست خوب پا خوب پا پای ما نبوش تمرکزمون رو با هم می‌ذاریم ببین هاجی اینایی که شما میگین خیلی البته رابطه به شعر نداره ولی خب دیگه حالا برای شما برداشت خودتون از شعر می‌گیرید واقعا بریم سراغ بیت بعدی لطفاً گفته که همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست همه کس طالب عشقند چه مسجد این... چه کنه چقدر قشنگه آره قشنگ. میگه همه دنبال یارن خیلی قشنگه واقعا منم هم همیشه دنبال نیمه کم شده خودم میگردم و... اینو دوباره برام میخونی فرشید جون بی زحمت بله برات میخونم نسبی جان بله. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست همه کس طالب عشقند چه مسجد بله. چک کنه میشت حاج آقا بله، اینجا که میگه همه کس طالب یارند منظورش از یار روحانیت میگه همه تو کار روحانیت ایچ فرقی هم نمیکنه دیگه حالا میخواد روحانیت اما مشرفید باشه یا شیاب باشه جوان باشه پیر باشه همه, همه. یعنی دنبال روحانیت همه ایم. دادی همه. به نظر من ایم. که این منظورش وازم این بود که باید به جوانه آزادی بیشتر بدن مسئولین اشتباه تفسیر نکرن واقعاً پدر و پسر م. یعنی عالی اند یعنی تو این زمینه یعنی حاجی هر خودش میخواد تفسیر میکنه نسیمی هم هر چی خودش فشید. اونجام فشید. اونجام فشید. که کارا در منافع اونجا میگه اما کس طلبه بله چه مسجد چه چی بودن بادش کنش تاج کنش کنش فرش بابا کنش اینجا یعنی صومعه عبادتگاه اینجور چیزا حاجی احتمالاً میدونن حاجی میفرمودین این بخشش رو همه کس طالب عشق چه مسجد چه کنشت بله دیگه همه یعنی داره مگه که همه کس طالب عشق روحانیت هند خصوصا مؤمنات ها. و روحانیت را از اون اینجا برای هدایت مؤمنات در تمام مکانها آزاد مگذاره دیگه حتی جایی مثل اون نشته کنشت اونجا هم آزاده هدایت بله دستون در کلا کنسفت شعر رو کلا همه چیشو عوض چیش از اون بیت بگذریم میگم بله میگن که فرصتمونم برای این بخش تموم شده حاج آقا و نصفی عزیز آره دیگه بلده بلده. حالا چون بعد یه استراحت کوتاه بکنین یه چیزی کنیم ما دوباره برمیگردیم برای ادامه تفسیر شه چیزه فقط بحث جنین میوه ها تموم شده ها بگوین ظرفو پر کنن دیگه بابا زحمت جمیع الحمد حالا حالا غیر از جیبای حاجی که پره تو زرف هم هنوز هستا ببین اون خورمالو چیه؟ خورمالو. او اون خرمالو اون ک... خرمالو حق ماه، اون عشق ماه. ای بابا، بچا، حاجی مالو شما، همش مال بله بله شما. بله. زیاده، میگم بازم بیارن. چرا حاجی فجی یه خچ از اون هندونه‌ای که تو جیبته می هم خوش شده. تو جیبت. جیبت برا کنار ببینم بچه برا حرف بچا. خب، لطف کنیم بی بیرون چون ما کار داریم ادامه برنامه شب یلدا رو باید ادامه بدیم. بفرمایید هاجلاها بهرانا بفرمایید خیلی ممنونم هاجاقا نسیب میبینیمتون دوباره برمیگردین دیگه اردونش شما. رفت ازشون پذیرایی کنیم دیگه بیرون عاجل و اینام هست آره آره